Thank mm -hmm. you. شیش صبح چه من دلم بخواد چه نخواد با این دختره هم سفر شدم هوای دم و شرجی و مردای خونگرم دم به هیزی گریک خوب یادم انداختن دوباره قبرس هستم من تو این شهر یه آپارتمان دارم به یه آشنا قول دادم که چند روز این دختره رو همراهی کنم میگه نویسنده دست داره تحقیق میکنه تو تمام طول راه هیجان منو سر تعریف دوای دائمی ترکا و قبرسیا و مصیبت‌های زندگی اینجا رو با لبخند جواب داده. کولوار خندداری رو هم می‌کنه. یه مایتاب همراشه یه بیلچه. روز دوم هنوز بیرون نرفتیم، میخواد آشپزی کنه. با هم میریم خرید. من ناگت و سوسیس برمی‌دارم، اون تخم و مرغ و پنیر و زیتون. برمی گردیم آپارتمان تون, تون همه جا رو مرتب میکنه دستاشو میشوره مایتابهش رو گاز میذاره بهش میگم من مایتابه دارم میخنده میگه عادت دارم بهش مثل بعضیا به بالش خودشون بلندی گاز من به بالای شیکم هم میرسه ولی با توجه به قد و او به پایین شیکمش از همون بالا تخمرگا رو میندازه تو مایتابه بدون اون که خم بشه خیلی با بانمکه روز سوم تقریبا تمام روز ساکت هستیم اسب پیشنهده و کنار دریا میریم دو تا آبجو میخوریم بیلچش آورده دامن زرد بلندی پوشیده موهای بلند و سیاش ووس کرده و از رنگ پرید صورتش گذشته و به شونه رسیده از من می‌پرسه که من بچه دارم یا نه. میگم یه دختر که با پدری زندگی میکنه این اولین سالال یکی از من پرسیده میگه دوست داره دختری داشته باشه حالا خیلی از محل رفت مردم دور شدیم با زمینو زمین رو میکنه. مطمئن نیستم ولی شاید چیزی در جیب دامنش میذاره. گرممه. آفتاب چشم میزنه. به چیزی که میبینم اطمینان ندارم. برمیگردیم. روز چارم. میگه سه روز دیگه رایی خیر کیتاست. متعجب نگاش میکنم. میگه رایی نیست. همش یه ذره از لارنکا دورتره. میگم ترنا نمیشه بری میگه راه و بلد و اونجا آشنایانی داره آی خدا اولین باره که کلافم میکنه آشنا این کجا بود توی دکور عجیب غریبی که مال زمان نو و همش 500 نفر ساکنش هستن موهاشو بالای سرش برده به من نزدیک میشه میخنده با نوک انگشتش پوست صورتمو لمس میکنه هوای دهنش به صورتم میخوره میگه را و بلده روز پنجم برای تمدید اقامتم کاری تو اداره مهاجرت دارم میگه با من میاد سر را از راننده میخواد که ما رو کنار یه مزرعه پیاده کنه رو به فنس کوتاه مزرعه زیتون ایستاده خیز برمی اون طرف فنس رو به خونه میسته کفش دوزک روی سندلش را میره به طرف نارنجی دامنش توجه نمی کنه برمیگرده دوباره سوار میشیم میریم شوشم. نشستیم سر میز افتاب و رتوبت و دریا جی قواغ و جای رنگی و بچه ها خانوم آواز خون و دستیارش یه دختر جوون دانشجو بخارش خانوم آواز خون قصه میگه از گم شدن حلقه عروسیش درست شب عروسیش توی همونی رو بیر وسط آواز خوندنش میبینه دستش نیمه فالش میخونه شیش رگه میشه صداش میزنه زیر گگه حالا اون گریه با دو گریه ولی حالا اون خنده با ما خنده ایرما تعریف میکنه از زن شوهر هم کلاس کلاس میزنه زنه با یه مرد دیگه بی کلاس دختر جوونه میخندن ولی ایرما میگه لاس زدنش سرشو بخوره ولی زایه کردن یه شوهر ستی دویی اصلا کار خوبی نی دختر میگه ایرما جون پنجا کلویی شو کردنش کنانی؟ خارش میگه شست نه شست و پنگ ایب داره شست و پنگ کلویی یا زایشم؟ سرخوش هستیم قشقش میخندیم و قدم میزنیم ایرما از ما عقبتر را میره دخترا میدان و با من هم قدم میشن میگن چه باحاله ایرما؟ یه بطری تو آب انداخته داره تماشا میکنه تا کجا میره؟ روز هفتم. ایرما صبح سوپ کوله‌شو برمیداره میره. به نگاهی میفهمم تمام خورده ریزا و بیلچه و مائتبه رو برداشته. چیزی نمیگم. خیلی سری کوله‌ای از شب آماده شده‌شو برمی‌داره و از در میره بیرون. حرفامو زدم بی فایده است. روز نهم خیراکیتا. روبروی من یه تپه است که یه قلعه قدیمی روش ساخته شده. خود تپه توی یک دره قرار گرفته. آفتاب از هفت بند من و معمور پلیس لارناکا و معمور سفارت در اومده با همین خستگی و بیچارگی روی تخت سنگی ولو شدم گیر افتادم توضیحش برای خودم هم مشکله توی تموم خونایی که میریم سراغ ایرما رو بگیریم توی اتاق دعا تصویر زنی خندان و مهربان در حال پرتاب تخم مرغ توی مایتابه به دیوار میخ شده در خانه دیگه تصویر زنی معموم با دامن دراز گلگلی تو و اتاق دیگه تصویر ایرما که با روغن مایتابه به سر روش میماله و تدهین. میکنه. روی یه دیوار دیگه عکسی از ایرما که بیلچه رو به زمین زده رو به دریا و لباش در حال خوندن سرودی باز مونده. مشخصات ایرما رو به هر کدوم که دید دستاشونو به حالت دعا در میارن. تو رو به دیدن اکسای کهنه و زرد ایرما قدیسه شهید دعوت می‌کنم. حالا سال‌ها از ماجرای گذشته پلیس قبرس ایرما رو شده اعلام کرده خانواده‌اش هنوز به دنبالش می‌گردن و از ناامنی داری مشاکیان فکر می‌کنن عکس‌ها و نقاشیایی که دیدم دروغه امروز یکی از دختره همسفر قبرس که برای خودش خاونی شده من رو به یک گالری دعوت کرده که عکس‌ها و نقاشی ها و های ایرما رو نمایش میدن حالا اینجا هستم که ببینم راستش رو بخواید جرأت هم نمی‌کنم نگاه کنم حالا تا ببینیم